حکمی که از او محال باشد پرهیز فرموده و امر کرده که از بی بگریز آنگاه میان امر نهیش آجز، عاجز درمانده جهانیان که کژدار و مریز رفتند و ز یکی نامد باز تا با تو بگوید سخن از پرده راز کارت ز نیاز شاید ننماز بازیچه بود نماز بیست و نیاز بر رو سر افلاک جهان خاک انداز می میخور و گرد خوب رویان میتاز چه جای عبادت است و چه جای نماز که از جمله روندگان یکی نامد باز یر گوهر طاعتت نسپتم هرگز گرد گنه از چهره نرفتم هرگز نومید نیامد با بارگاه کرمت زیرا که یکی را دو نگفتم هرگز